فصل سوم سو حافظه های قدرتمند خود به خود و به بیان دیگر پاتولوژیک شدت حافظه در برخی موارد که در افراد دارای قدرت حافظه با هوش فوق طبیعی توام می شود به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش یافته و یا حتی از بین می رود این حالت در میان افرادی نیست که دارای هوش طبیعی و یا حتی پایین تر از حد معمول بوده، اما حافظه قوی خصوصاً در زمینه ریاضیات دارند، مشاهده می شود. در این فصل، نمونه های از حافظه های قوی را برایتان مثال می زنم. بخش اول، شخصیت های باهوشی که دارای حافظه قوی بودند. تقریباً تمام انسان های برجسته دارای حافظه هایی بسیار عالی بودند، که ادده ای از آنها به صورت افسانه در اند. به عنوان مثال، راسین قادر به دوباره خانیه تراجدی های کاملی بود که فقط یک یا دوبار آنها را خوانده بود. دکتر فرد برامز دویست هزار تاریخ از وقایه بزرگ جهان را حفظ کرده بود و میتوانست به پانزده زبان مختلف سخنرانی کند. کاردینال گویسپا گاسپرو مزوفانتی که یکی از بزرگترین نوابغ زبانشناسی در تمام اعثار می باشد، قادر بود حداقل در 54 و چهار زبان با چنان فساحتی سخن بگوید که بومی آن زبان شمرده شود. در هندوستان افراد متبهری وجود دارند که قادرند تمام نوشته های ریگ را که شامل بیش از هزار آواز و مشتمل بر ده هزار قطعه میباشد باشد از حفظ بخوانند. گاهی اوقات قدرت حافظه از سنین کودکی تظاهر میکند بدین ترتیب فرانسوا بوشاتو که در سال 1645 در خانواده ای هنرمند به دنیا آمده بود در سن 8 سالگی زبان فرانسه، لاتین، یونانی و اسپانیایی را آموخت هنگامی که او به دیدار کاردینال مارازین رفت کاردینال 500 لیرو کادوهای گرانبهایی را به وی هدیه کرد هاینریش هنکن که در ششم فوریه سال 1721 در لوبک به دنیا آمد، یکی از معروفترین محاسبات ریاضی تمام احسار را به خود اختصاص داد. متاسفانه او بیش از چهار سال و چهار ماه عمر نکرد. وی از سن ده ماهگی اجسام اطراف خود را می شناخت و قادر بود متون نصر و شعر را حفظ کند. در پانزده ماهگی این شخص خارقلاده مطالعه تاریخ را آغاز کرد و حدود دو سالگی تاریخ لاتین و فرانسوی را مطالعه می کرد. او در اوایل چهارمین سال تولدش سفری به دانمارک کرد. در آنجا همه زبان به ستایش ویگو شدند، زیرا چنان شناخت دقیقی از تاریخ قدیم و جدید و جغرافیا داشت که به تمام سوالاتی که از وی می با دقت کامل پاسخ می‌داد. او جز زبان آلمانی به زبان‌های لاتین و فرانسوی سخن می‌گفت و به راحتی می‌توانست 1400 جمله از نویسندگان معروف لاتین را از حفظ بگوید وی در شناخت شناسی مطالعات بسیاری کرده و اطلاعات پیشرفته‌ای در مورد شرکت‌های اروپایی داشت و نوشتن را نیز فرا گرفته بود این نکات را معلم وی بیان کرده است متاسفانه او از نظر سلامتی ضعیف شده و همان گونه که گفتم در سن چهار سال و چهار ماهگی درگذشت. چیزی که در مورد او عجیب بود این است که وی همواره از تغذیه عادی خودداری کرده و حتی تا زمان مرگ خود نیز از شیر نوزادان تغذیه می کرد. فیلیپ باراتیر که با هاینریش هنکن در یک سال به دنیا آمده بود از دومی سال دبستان مطالعه زبانهای خارجی را آغاز کرد. او در سن دوازده سالگی چندین زبان اروپایی و چند زبان شرقی را آموخت. متاسفانه وی در سن 19 سالگی در حالی که به تازگی دکترای فلسفه خود را گرفته بود درگذشت. در, در اوایل قرن نوزدهم با نابغه دیگری در آلمان برخورد می کنیم. به نام کارل ویت، که در سن شش سالگی آموزش فرانسه را آغاز کرد، و به دنبال آن لاتین، یونانی و انگلیسی را فرا گرفت. وی در سن هفت سال و ده ماهگی در یک مدرسه به مردم نشان داد که قادر به خواندن تمام این زبانها میباشد می باشد. در سن نه سالگی او همانقدر اطلاعات داشت که یک جوان هجده ساله در صورت تحصیل در دانشگاه لایپسیک درست. تقریبا در همان زمان ریاضیدان معروف و ستاره ایرلندی، ویلیام رون هامیلتون میزیست وینیز حافظه ای خارق‌العاده در فراگیری زبان داشت او در سن سه سالگی به تنهایی خواندن انجیل را فرا گرفت در سن پنج سالگی زبانهای لاتین، یونانی و عبری را آموخت. در هفت سالگی ایتالیایی و فرانسوی در نه سالگی سانسکریت و عربی سپس زبان فارسی، کلده ای،, ای، هندی، مالی، مهارات، بنگالی، و سرانجام اولین عناصر زبان چینی را فرا گرفت وی پس از آنکه با محاسبگر معروف زرا کلبرن آشنا شد اندیشه خود را وقف ریاضیات کرد و کشفیاتی اساسی خصوصا در ارتباط با محاسبه فاکتوریل، هدوگراف و محاسبه کاترنیون انجام داد وی در سن 21 سالگی استاد نجوم شد جان استوارت میلنز که بعدها فیلسوف معروفی شد از کودکی دارای حافظه خارق العاده ای بود او در سن 3 سالگی یادگیری یونانی را آغاز کرد وی بعدها نوشت من به صورت مبهمی خود را میبینم که از برای افسانه های ایزوپ یعنی اولین کتابی که خواندم در حال متحول شدن هستم دومین کتابی که خواندم آنابیز بود وی از سن 3 تا 8 سالگی تعلیفات بسیاری از نویسندگان یونانی، نظیر هرودوت، لوسیین، پلاتون و آثار تاریخ نویسانی نظیر هیوم و گیبون را به زبان انگلیسی مطالعه کرد. هنگامی که پی می‌بریم، او در این دوران چند کتاب رمانتیک‌تر مانند روبنسون کروزوه و هزار و یک شب را نیز مطالعه کرده کمی خوشبینتر می‌شویم. او بین 8 تا دوازده سالگی لاتین و یونانی را مطالعه کرد و فهرست اسامی نویسندگان که وی تعلیفاتشان را خوانده بود باور است. در همان زمان او مطالعه هندسه، جبر و محاسبه دیفرانسیل و علوم دیگر را نیز آغاز کرد و در سن دوازده تا سیزده سالگی منطق و علوم سیاسی را آموخت. اما کمی نزدیکتر به تاریخ ما، ام ترومپ تی که از والدینی فقیر و کاملا بی سواد به دنیا آمده بود تقریباً به تنهایی زبان‌های فرانسه و آلمانی را فرا گرفت. وی زبان فارسی را در عرض چند هفته آموخت. در سن دوازده سالگی بدون هیچ استادی زبان‌های لاتین، یونانی و عبری را یاد گرفت و در سنین بزرگسالی تقریباً تمام زبان‌های زنده و مرده را آموخته و استاد دانشگاه علوم شد. بخش دوم حافظه های محاسبگر قوی در یکی از کتب توان حافظه محاسبگران عجیب را مورد مطالعه قرار داده و نشان دادم که اکثر ایشان دارای حافظه های بسیار عالی برای حفظ ارقام هستند در این زمینه میتوان جدیدا باکستون زیرا کولبور زکریا داز هنری موندو و نزدیکتر به زمان ما دیاماندی، دیسمر، پیر آنیش، ژاک اینودی، ویلم کلین و پروفسور آس ایتکن از دانشگاه ادینبورگ که حافظه شنوایی و بینایی عجیب وی به او امکان می‌داد تا 2000 اعشار عدد پیرا حفظ کرده و فورا هر یک از اعشارها را از هر ردیفی که باید بگوید نام ببرد. اما در این کتاب مسئله ای را که مربوط به بحث ما می شود و محاسبهگرانی را که خود شخصا شناخته و با آنها آزمایش هایی یعنی خانم اوزاکا، ارنس مونژیون پول لیدرو، موریس داگبر و گاستون لابورتوگانز را مورد بررسی قرار می خانم اوزاکا را که محاسبگر فوقلاده است، اولین بار حدود 40 سال پیش، در مؤسسه متاپسشی که بین المللی ملاقات کردم. در آن هنگام وی تحت هدایت دکتر اوستی مقدار بسیار زیادی از ارقام را حفظ کرده بود. روزی در جلسه ای که در آن یک محاسبگر عجیب و یا حداقل دقل سریع العمل شرکت داشته او احساس می کند که بدون آنکه دقیقا دقیقاً بداند چرا قادر است همان محاسباتی را که آن محاسبگر انجام می دهد وی نیز انجام دهد. بدین ترتیب وی که به صورت عجیبی این توانایی را در خود دیده بود، تمرینات ریاضی را آغاز و مشاهده می کند که از طرفی با سرعت بسیار زیادی ارقام مورد نظر را محاسبه کرده و از سوی دیگر خاطره این اعداد را که در ذهن خود محاسبه کرده بود همچنان حفظ می کند. مورد دوم او را وادار می سازد که آموزش خود را در جهت دیگری پیش ببرد. خانم اوزاکا از محاسبات دست کشیده و سعی در حفظ اعداد هرچه بزرگتر می کند. از این پس پیشرفت وی بی نهایت سری بوده. به صورتی که قادر می مطابق میل خود این کار را در برابر عموم انجام دهد. وی استعداد خود را تکامل بخشیده و حجم بسیار بزرگی از اعداد را که با قلم محاسبه میکرد، از حفظ می اعدادی از قبیل توان یک رقمی و دو رقمی تا ده رقمی. توانهای اعداد سه تا هفت یا هشت رقمی، تعداد ساعت، دقیقه و ثانیه بر حسب سن و غیره. در چنین شرایطی، گنجینه ذهنی اعداد وی دیگر غیرقابل نابودی بود. خانم اوزاکا در این حالت میتوانست بدون هیچگونه اشتباهی در کادر اطلاعاتش به هر نوع سؤالی در رابطه با توان و ریشه پاسخ دهد. او همچنین میتوانست به سادگی اعداد و تعداد ثانی را که هرکس زندگی کرده محاسبه کند. وی هنگامی که میخواست اعداد را به خاطر بیاورد آنها را به گونه‌ای میدید که در خارج از جسمش قرار دارند و هنگامی که تعدادی از ارقام را به زبان میآورد به نظرش میرسید که این اعداد در یک تابلوی سفید رنگ با حروف سیاه به شکلی که از واقعیت هم هستند نوشته شده است آزمایش هایی که توسط دکتر اوسیتی روی خانوم اوزاکا انجام شد و من نیز در آنها شرکت داشتم به شما اطلاعاتی از توانایی محاسبه خارقلاده این خانوم می دهد. دکتر اوسیتی رادیکال عدد 97 و سپس دهمین ده توان همین عدد را از وی خواست و فورا پاسخ شنید. سپس از او خواست که ششمین ریشه ی عدده 402 تریلیارد و 420 تریلیون و 747 میلیارد و 482 میلیون و 776 هزار و 576 را به دست بیاورد. سپس ریشه دوم همین عدد را از او خواست که وی هر دوی آنها را به سرعت استخراج کرد. پس از انجام این کار، دکتر اوستی به میل خود و دور از چشم دیگران صد رقم را نوشته و آنها را با آهنگی که در هر ثانیه یک رقم را اعلام میکرد خواند. هنگامی که من اعلام این ارقام را به پایان رساندم، خانم اوزاکا تمام این اعداد را با همان نظمی که بیان شده بود مجددا تکرار کرد. حدود چهل و پنج دقیقه بعد، پس از آن که در مورد مسائل متنوعی بحث کردیم، من از خانم اوزاکا پرسیدم آیا می توانید آن صدرقم را که برایتان خواندم مجددا تکرار کنید ؟ وی پاسخ داد؟ خیلی راحت. آیا امکان دارد که این بار این کار را از انتها انجام دهید؟ سعی خواهم کرد و این کار را با موفقیت انجام داد. در جریان جلسه 20 نفر هر یک عددی را به انتخاب خود روی یک قطعه کاغذ جداگانه نوشتند. روی هر کاغذ، یک عدد از یک تا بیست رقمی نوشته شده بود. این کاغذ را با یکدیگر مخلوط کرده و بر حسب ترتیب اتفاقی آنها را با صدای بلند خواندند و سپس روی یک تابلوی سیاه که دارای بیست قپسه شماره گذاری شده بود ثبت کردند. این اعداد به صورتی روی تابلو نوشته می شدند که هیچ گونه نظمی در آنها را آیت نمیشد. خانم اوزاکا که ایستاده و رویش به سمت من بود، این ارقام و شماره قفسه آنها را میشنید ولی آنها را نمیدید. برای مشکل تر کردن آزمایش، خانم اوزاکا تقاضا کرد که پیش از اینکه ارقام را تکرار کند، چند سؤال دیگر از او بپرسند. یک دستیار رادیکال و دهمین ده توان عدد 27 را از وی سؤال کرد و سپس دهمین ده توان عدد و 55 را از او خواست و سرانجام تقاضا کرد که توان این عدد را به صورت نزولی بگوید. این اعمال برای این خانم مانند یک بازی محسوب می شد. سپس از وی می خواستند بیست عددی را که روی تابلو نوشته شده است به ترتیب از یک تا بیست تکرار کند. او ترتیب از یک تا بیست را نشنیده است. اما با سرعت خارقلادهی بدون اشتباه محاسبه را انجام داد. پس از آن از وی توان این ارقام را خواستند. و شخصی دومین، دو سومین، چهارمین و سپس پنجمین توان عدد 221 و و را از او خواست و او این توانها را نیز بدون تأخیر گفت. چند نفر تاریخ تولد خود را به خانم اوزاکا گفتند. سپس او به سرعت به ایشان گفت که چند روز، چند ساعت و چند دقیقه از زندگی آنها می‌گذرد. یک دستیار به او پیشنهاد کرد که رقم 624987 را در عدد 2358 ضرب کند. خانم اوزاکا این عمل را به صورت رقم به رقم انجام داد. 47 رقم در عرض 7 دقیقه بدون هیچ گونه تلاش ظاهری و بدون اشتباه اعلام شد. سپس از وی خواسته شد که ارقام نوشته شده روی تابلو را مجدداً ولی این بار از آخرین رقم بگوید او این کار را به سرعت انجام داده و از خانه 20 تا خانه 5 را اعلام کرده و از این پس ارقام خانه‌های باقی مانده را به صورت ستایی بیان کرد سپس یک تماشاگر از وی خواست که ارقام خانه 6 و 13 را مجددا تکرار کند دیگری تقاضا کرد که رقم خانه 7 را برعکس بگوید و تمام این سوالات پاسخ داده شد در این حال دکتر موتیر که پیشنهاد کرده بود خانم اوزاکا رقم 624987 را در 2358 ضرب کند از وی خواست که 47 رقم را مجددا تکرار کند هنگامی که می‌اندیشیم چنین رقم عظیمی باید تکرار شود این آزمایشها واقعاً تحجب آور به نظر می‌رسند حفظ وهمانگیز هزاران عدد که هر یک از پانزده، بیست، سی و حتی چهل رقم تشکیل شده و به خاطر آوردن آنها به صورت کامل از اعماغ زمیر ناخداگاه، یک عملکرد مبهوت مپود کننده و در وهله اول ظاهرا غیر ممکن به نظر می رسد. ارنست منجون و پول نیز که از محاسبگران عجیب بوده و امروزه در اند، توسط من مورد مطالعه قرار گرفتند. مسلما آنها حافظه باور نکردنی خانم را نداشته ولی قدرت به خاطر سپاری ایشان نیز حالتی استثنایی داشت. به صورتی که روز دوم ماه مه سال 1953 در ای که در کاخ کشفیات در برابر گروهی از دانشمندان انجام شد پول لیدرو یک جمع ده عددی را که هر یک از اعداد آن دارای 36 رقم بود انجام داد و سپس مسائل دیگری را حل کرد و به راحتی نتیجه این جمع را به صورت مرتب و معکوس و از طریق قطعات متنوع دکالیون، نونیلیون، اوکتیلیون و غیره را به دست آورد. موریس داگبر که روی اونیز مطالعاتی انجام دادم در یکی از کانال‌های تلویزیونی در 14 سپتامبر 1976 توانایی مشابهی را از خود نشان داد. در طول جلساتی که موریس داگبر برای عموم اجرا می‌کرد، به سرعت به صورت یک محاسبگر ذهنی هرفهی درآمد. او عملیات محاسبه خود را با دو تمرین زیر خاتمه داد. یک جدول پانزده خانه ای توسط شخصی تنظیم می و تماشاگران هر یک بر حسب تصادف یک عدد دو رقمی را برای هر کدام از این خانه ها اعلام می کردند. هنگامی که تابلو تکراری شد، پنج عدد شش رقمی که یکی زیر دیگری نوشته شده بود به دست می آمد. و محاسبگر بدون آنکه حتی یک لحظه آنها را دیده باشد، با یکدیگر جمع میکرد. این عملیات چنان به صورت طبیعی انجام میشد که تماشاچیان احساس میکردند محاسبگر روبروی تابلو ایستاده است. سرانجام او تمام اعداد را که توسط تماشاچیان در جریان جلسه انتخاب شده و چیزی حدود 150 عدد بود، تکرار میکرد. ام گاستون لابورتوگانز که من اخیرا او را از طریق آزمایش‌های کومبرلندیزم به تقاضای یکی از مجلات هفتگی کنترل کردم، نیز همین تمرین را با راحتی هرچه تمام انجام داده بود. سوای این موارد استثنایی، برخی از بازیها و مسابقات رادیو یا تلویزیون نیز حافظه‌های خارق‌العاده‌ای را که گاهی در جهاتی باور باورنکردنی قرار دارند، کشف می‌کنند. ارائه روی صحنه که توسط لو معروف به انسانی با مغز عجیب انجام میشد نیز شبیه به همین بازی هاست وی با حفظ وقایه تاریخی پنج جلد کتاب تاریخ فرانسه نوشته گویزو و محل دقیق آنها در این کتب و محل دقیق آنها را در لغتنامه لاروس به محض آنکه یک تماشاچی یک واقعه تاریخی را متذکر میشد اعلام میکرد که این واقعه در جلد چندم کتاب، صفحه چندم آن و چندم خط نوشته شده و تاریخ دقیق واقعه و انشاء آن را بازگو می‌کرد. پس از آن وی به لغت‌نامه لاروس رفته و صفحه و خطی را که به آن واقعه مربوط است، بازگو می‌کرد. علاوه بر آن اگر اختلافی بین لاروس و گویزو وجود داشت، نیز آن را متذکر می‌شد. من از مواردی که در آنها تغلب نشده بود یاد کردم زیرا بسیاری از آزمایشهایی که در مورد حافظه های مافوق روی صحنه انجام می‌گیرد در واقع مربوط به زمینه خطاهای حسی و ایجاد توهم است که در فصول پایانی به آنها اشاره خواهیم کرد بخش سوم انسانی که همه چیز را به خاطر می‌آورد اما با مطالعه زندگی ونیامین که یک لهستانی بود و بیش از سی سال تحت مطالعه پروفسور آ آر لوریا از آکادمی علوم شوروی قرار داشت در رابطه با مسئله به خاطر آوردن به مرز بین بیماری و حالت عادی که حتی میتواند فوق عادی نیز باشد میرسیم این شخص قادر است هر چیزی را با اراده خود به خاطر بسپارد و تمام جزئیات حیات خود را به خاطر بیاورد پروفسور لوریا می نویسد حافظه وینیامین محدوده مشخص، گستردگی و یا صبات معینی نداشت. او قادر بود بدون اشتباه و هیچگونه تلاش ظاهری کلماتی که یک هفته، یک ماه، یک سال و یا حتی چندین سال قبل به او داده شده بود به خاطر بیاورد. برخی از این آزمایش ها که همواره با موفقیت روبرو می‌شد، پانزده یا شانزده بار پس از به خاطر سپردن فهرست کلمات و بدون آنکه وی هیچ هیچگونه آمادگی داشته باشد انجام می گرفت. در این حالت ونیامین چشمهای خود را بسته و چند لحظه در سکوت تلاش می کرد و سپس می گفت درسته همینه در آپارتمان قدیمی شما بود. شما پشت میز نشسته بودید و من در یک صندلی راحتی بودم. شما یک لباس خاکستری پوشیده بودید و مرا نگاه می کردید. حالا شما را دارم میبینم که به من میگویید و سپس او بدون کوچکترین اشتباهی تمام اجزای فهرستی را که چند سال پیش به او ارائه شده بود تکرار میکرد. این پدیده آنقدر تعجب آور به نظر میرسید که ونیامین در میان سایر افرادی که دارای حافظهی قوی بودند کاملا مشهور شد. او قادر بود که هر یک از هزاران فهرستی را که به او ارائه شده بود به خاطر بیاورد. در یک جلسه عمومی، ونیامین توانست یک گروه کلمات را که هیچ گونه معنایی نداشته و شبیه به کلمات زیر بودند کاملاً حفظ کرده و بعداً تکرار کند. این کلمات مثلا عبارت بودند از یک ماوانا ساوانا دو ناسانا ماوا سه سانا ماوانا چهار واسانا وانا ما، پنج ناوانا واساما شش ناما ساوانا، هفت هشت ناسا ماوامانا و غیره. هشت سال بعد، پروفسور لوریا به طور ناگهانی از او خواست تا فهرستی را که از آن نام بردیم تکرار کند. و ونیامین بدون هیچ گونه اشتباهی این کار را انجام داد. البته این موضوع پس از هزاران آزمایش دیگر انجام شد. در همان حال اون مراحل مختلف به خاطر سپاری هر کلمه و سیلاب را که در ذهن وی همراه با تصاویر و مکانهای تدائی کننده همراه بود را به خاطر می آورد. در اینجا به عنوان مثال در رابطه با دو کلمه اول این فهرست وی آنها را اینگونه به خاطر سپرده بود. کلمه ماوانا ساناوا من، یعنی ماوا، در خیابان اسلیسکا، در ورشو، کنار ای که به حیات باز میشد قرار گرفت. وی با دست چپ داخل اتاق یعنی ناسا را نشان می دهد. با دست راست یعنی ناوا به یک دست فروش یهودی که در حیات ایستاده بود و یک ساک دستی روی شانهی راست خود انداخته بود اشاره منفی کرد. مووی از زبان لهستانی به معنای صحبت کردن و ناسا در زبان روسی به معنای مال ما است. هنگامی که صاحب ای ما گفت ناسا من دیدم که یک شعای پرتغالی رنگ که رنگ مخصوص حرف سینه است درخشید. ناسا ماوا حالا دست فروش در خیابان است و در برابر یک درشکه ایستاده است. او دست های خود را از هم باز کرده و جست تجرب زده ای به خود گرفته که گفته های صاحب خانه من که به وی گفته بود ما یعنی ناسا هیچ چیز برای فروش نداریم در وی ایجاد کرده است. او دستهایش تصویر خیالی زنی را که دارای حیکل درشتی است یعنی ناما ترسیم می کند. یک رهگذر عصبانی فریاد می زند. وای یا وا. برای یک یهودی بدشگون است که یک کودک شیرخوار را نگاه کند. بنیامین با همان سهولتی که لیست کلمات و جداول منحسرن رقمی را حفظ می کند، به همان صورت افکار تخیلی را نیز به وجود می‌آورد. به عنوان مثال، او به طور متوالی ارقامی را در عرض چهل ثانیه با صدایی آهنگدار و بدون وقف نامگذاری کرده و سپس آنها را به صورت افقی یا مورب می‌نوشت. پروفسور لوریا می کنترل بازخانی این جدول که چند ماه بعد انجام گرفت نشان داد که ونیامین این تابلوی تثبیت شده را به همان سهولت و تقریباً در همان مدت زمانی که اولین بار تولکشی تا آن را ارائه کند بازخانی کرد تنها تفاوتی که در این مدت به وجود آمده بود مدت زمانی بود که او برای بازسازی شرایطی که این آزمایش در آن انجام شده بود و دوباره دیدن اتاقی که در آن هنگام در آن نشسته بودیم و دوباره شنیدن صدای من و دوباره خود را در حال تماشای تابلو قرار دادن صرف کرد. روند باسخانی در مقایسه با مرحله اول نیاز چندانی به وقت اضافی نداشت. اضافه می کنم که برای ونیامین، حروف، ارقام، کلمات و اسوات اشکال، رنگ، نورها و حواست چشایی و لامسه را ایجاد می‌کردند. وی میگفت حرف آ برای من سفید و بلند است. حرف ای دور می شود و نمی توان آن را ترسیم کرد. ایله زیرتر است. ایف تیزتر و بلندتر از ای است. اییا بزرگ است. او از سینه می آید و صدای آن به سمت پایین می روید. از پهلو می آید. و من مزه هر یک از اسوات را احساس می کنم. برای من یک، دو، سه، چهار و پنج، تنها ارقام ساده نیستند بلکه هر یک شکلی دارند. مثلا برای من عدد یک رقم نکتیزی البته سوای نوشداری آن بوده و چیز کامل و سختی است. عدد دو تخت، مستطیل، سفید و گاهی اوقات خاکستری است. سه به صورت قطعه نکتتیزی است که میچرخد. چهار مستطیل بوده و گاهی نیز گرد و مدور و شبیه به دو ولی مهمتر و بزرگتر است. پنج عددی کامل و مخروطی است. اونی سخت و محکم است. شش سفید است و غیره. پروفسور لوریا می روزی پس از ترک مؤسسه‌ای که با ونیامین در آنجا آزمایش‌های را انجام می دهیم زمن فراموش کردن اینکه با چه کسی صحبت می کنم به او گفتم شما مسیر رفتن به مؤسسه را فراموش نخواهید کرد؟ او پاسخ داد مسلما نه چگونه چنین چیزی میتواند تواند اتفاق بیفتد؟ این دیوار چنان طعم شوری دارد و از چنان سختی برخوردار است و صدایی چنان زیر و تیزی دارد که گونه که مشاهده می کنید قدرت حافظه ای این شخص از قدرت حافظه خانم اوزاکا که ما آن را قدرت عظیم میدانستیم، نیز بیشتر بود. به صورتی که اگر حافظه های آور را درجه بندی کنیم، می بگوییم که حافظه ونیامین چندین درجه بالاتر از حافظه خانم اوزاکا قرار دارد. به هر صورت پدیده های شدت حافظه، حال شکل پاتولوژیک داشته باشند یا نه ثابت می کنند. که مغز ما قادر است مقدار باورنکردنی از اطلاعات کما بیش پیچیده را در خود انبار کند و به همین دلیل می توانیم به حافظهمان اعتماد داشته باشیم. بنابر نظریه بسیاری از روانشناسان و فیزیولوژیست ها هیچ چیز از مغز ما محو و پاک نمی شود و تمام خاطرات در آن همیشه حاضر بوده و آماده تا در شرایط مناسب تظاهر کرده و به گفته فروید به صورت کمابیش خلاصه شده ولی همواره با همان اصالت ظاهر شوند.